با ما درم قلب نمیگیرد جفت، جارو به طرف خانه ما پاک برفت پیریز خرابات برون آمد و گفت، میخور که به عمرات می باید خوفت. با حکم خدا به جز روی در نگرفت، با خلق به جز روی ریا در نگرفت، هیله که در تصور اقلایت کردیم بلیک با غذا در نگرفت. بیگانه اگر وفا کند خیش من است و ورخیش خطا کند بدندیش من است گر زهر موافقت کند تریاک است و نوش مخالفت کند نیش من است پرخون ز فراغت جگری نیست که نیست چیدای تو نظری نیست که نیست با آنکه نداری سر سودای کسی سودای تو در هیچ سری نیست که نیست